باب اول در سیرت پادشاهان حکایت پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز، ازایه سال انسانو، تال لسانو، کس نور مغلوب یسول و علل کلب. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت، ای خداوند، همی گوید، ول کازمین والآفین عن الناس ملک را رحمت آمد و از سر خوند اون در کزشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت، آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مسلحتی بود و بنای این برخبسی و خردمندان گفتند دروغ مسلحت ها میز به که راستی فتن انگیز. هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر تاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس دلان در جهان آفرین بند و بس مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و کوشت چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن، چه بر روی خاک